بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأهله وصحبه أجمعين أما بعد مدار إدامي بحث سيرة مصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم بشير قردان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهل من قصة ممشود. سرشتگان آمدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را شکافتن قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم را شکستند دوباره سرجاشو برگردوندند و انا میبید جای اون که روی سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود من جای اون را دیدم ما قبل از اینکه الان وارد مبحثمون بشیم ادامه سیرت فقط یه تذکراتی هست ما هدفمون از این بحث سیرتمون هدفمون اینی که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم، درس بگیریم. یکی از این ما در رکام اول داشتیم که خداوند توصیه رو شروع می‌کنند با عادت و احترام برسول رسول الله صلی الله علیه و سلم. لا ترفع أسواتكم فوق صوت الرسول، لا ترفع أسواتكم صداتنا ولا نبرد. لیکن یکی از عادت‌ها احترام هاست. عدب و احترام در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم Alors, چه در حیاتش چه بعد از حیاتش مج شاید بخواه هم بگید که ما بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم صداونو میتونیم بالا ببریم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا میشه مگه صدا را بول برد الان الان اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستن بله میشه و ما هم خیلی میبینیم کسانی هستن که وقتی که بهشون میگید این سنته میگه نه با عقل و سنت رو به راحتی رد میکنه صداشو از صدای رسول الله صلی الله علیه و سلام بالاتر میبره صداشو بر کسی که از خودش صحبت نمیکنه بلکه وحی از طرف الله صداشو بالاتر انه لا ينتقان ال هو الا وحی یوحا یروزی همینجور اذكران از کنار رود نیل در سودان رد میشدیم یکی از دوستان با من بودند بعد گفت نگاه بکنید بعضی ها میان میگن که این رودها نمیدونم یکی از رود های بهشته در حدیث اومده کجا این رود به رود های بهشتی میخوره؟ پر از گلو پر از نمیدونم فلان و خاشاکه؟ گفتم سبحان الله یعنی با عقل جور در نیومد؟ حدیث رسول الله صلی اللہ علیه و ووسلم که چهار تا رود از رود های بهشتن بجله و فرات و نیل و پیشوننجشون؟ و این حدیث را به همین راحتی چون با اقلل جور در نیومات؟ غدش کردی نگاه نکردی به قدرت خدایی که این رود را چار هزار, چار هزار تا پنگ هزار کیلومتر جاریش میکنه از تانزانیای و فلان و فلان تا مصر چار هزار کیلومتر خودتون با خودتون سکر بزنید چهل بار از اینجا تا ای دو چار هزار کیلومتر، کم نیست دار بیشتر و اونم کشتی در این رود حرکت میکنه خیلی بزرگه لیکن الا انسان تو تفکر بیاد با عقل خودش صداشو بر رسول الله صلی الله علیه و سلام بالاتر ببره یکی از مثال ها هم بازم من به تو کسانی بودن میگفتن نگاه مسلمان ها بکنید از عقلانی ها از خود مسلمان ها ما مشکلمون اینه که از خودمون داریم مینالیم میگفتن که بله نگاه مسلمان ها بکنید مگه نمیوفته تو پشه میفته تو آبشون دوباره سرشو پایین می بیرون میارن چقدر این مسلمان ها کثیفن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه اسراف نشه برای اینکه یک شخص در حرج نیفته در مشقت نیفته آب کم داره گفت که اگر پشه ای افتاد سرش رو پایین بزنید چرا الان بعد از 1400 سال وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت میشه بله کارخانه میزنم برای تولید چی پشه پشه سازی چرا پشه بسازن چون پشه یک بالش زهره و یک بالش پادزهره وقتی که فشارو رو نگاه بکنی در آب میفته همیشه با بال سنگینش بال چپ میفته که زهره وقتی که با بال راستش در آب فرو ببری پایینش بزنی زهر، اون پادزهر در آب حل میشه خود به خود زهر خونسا میشه الان این کارخانه چه کار میکنه؟ بال سمت راست رو میکنه دارو بایش تولید میکنه بله همین داروی کنی که ما میخوریم از همین مگت خداوند هیچ چیزی به بی‌حکمت خلقت نکرده همین ماده به این ریزی دارو و دواز ساخته میشه و اینم رسول الله صلی الله علیه و از خودشون نگفتند حالا 1400 سال میکروسکوپی نبود که بیان زیر میکروسکوپ و زیر آزمایش به این نتیجه برسن که این بال با زهره بلیک بلیکند خداوند میخواد صدق رسالت محمدی را رسال صلی الله علیه و ثابت بکنه و چشم حسودان و چشم منکرین کور بکنه بله خیلی از چیزها هست حالا انسان اجازه به خودش میده روی حرف رسول الله صلی الله علیه وسلم حرف بزنه بلکه بر حرف خود خدا ما میبینیم خوصا در زن زنها مثلا بحث تعدد زوجات که میشه بحث تعدد همسران راحت, راحت یک شخص میاد میگه نه اصلا به در جامعه امروز نمیخوره خداوندی که حکیمه خداوندی که علیمه این مسلحت را بر بشریت شروع کرده انسان به خودش اجازه بده بر حرف الله حرف بزنه مثنویات و لطات و رباع در قرآن مده یک شخصی به همین راحتی بیاد بگه خدای من ظالمه که اصلا اجازه داده که مرد ازدواج بکنه دو تا یا سه زن بگیره. این صدا بی ادبی در مقابل خدابنده ان تحب ان تحبط اگر این کارو کردید عملتون احباط میشه صداتون رو بالا آوردید بی ادبی کردید چی میشه اعمالتون از بین میره خود به خود یا الله اعمالتون از توبیخ میشید، گناهکار میشید یا اینکه از اسلام خارج میشید. خصوصا اون کسی که بر شرع خداوند، بر حرف الله حرف بزنه و سخن بگه، رد بکنه با مجرد عقلش. فقط اینو من تذکر دادم به خاطر اینکه مواظب حرفامون باشیم، مواظب اون الفاظی که به کار میبریم، اون موقف هایی که در تقابل سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم میگیریم داشته باشیم. ادامه بحث سیرتمون. رسول الله الله عليه و سلم چهار سالگی اون واقعی صدرش حاصل شد سینه شو شکافتن و گفتیم خب میره رسول الله صلی علیه و عزه همچنان در اون صحرا چراگاهیش و سالاریش و سپری میکنه تا اینکه این واقع رخ میده و حلیمه میاد می به مادرش بر میگردونه سالش بود رسول الله صلی الله علیه و سلم که همراه مادرشون میرن به مدینه برن سری به قبر پدرشون عبدالله بزنن عبدالله ابن عبدالمطلب بزنن در راه در مسیر در ابوا مادرشون هم فوت میشن 6 مادرشان مادرشون فوت میشه حالا در قصه ها اومده در اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اومدن سر قبر رسول سر قبر مادرشون اجازه گرفتن اول چون اجازه نبود که بر سر قبری کسی بره بعد میرن اجازه میگیرن از خداوند که سر قبر مادرشون برن میرن سر قبر مادرشون بعد از که سر قبر میرن از خدا میخوان که طلب استغفار بکنن برای مادرشون لیکن خداوند بهشون اجازه نمیده و اونجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک میریزن بله رسول الله اشک میریزه اشک شفقت اشک مهربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجا بلند میشن بعد میفرماین الا اینی نهایتکم عن زیارت القبور من به شما من کرده بودن که به زیارت قبرها برید از الان ببند برید سری به مردگان بزنید تا بیاد مرد باشید بیاد عاقبتتون باشید که فردا مثل مادر رسول الله استغفار را ازتون حفظ نکنند اینو توجه بهش داشته باشیم مسیرمون هممون آخر زیر اون قبرهاست بریم بیاد مردگان باشیم رسول الله صلی الله عليه وسلم سنتش این بود که هر روز می رفتن به قبرستان در آخر حیاتش، هر روز می رفتن سر قبرستان می زدن و می گفتند السلام عليكم اهل دیار المؤمنین يا الله لنا ولكم دعا می کردن به مردگان. این سنتمو احیا بکنیم، هر چند روزی یه سری بزنیم و نگاهی بکنیم و به خودمون بگیم که مسیرمون همین خاک روزی میاد نفر ما رو مشخصه. نمیدنم نه, نه نوی ما رو میشناسه همینطور که ما پدر بزرگانمون رو فراموش کردیم ما رو هم فراموش خواهند کرد چه کار میکنیم تو اون قبر تو اون خلوت کی هست که به دادت برسه از همون اولی که منکر و نکیر میان سوال میکند من رب و مادینو از همون اولین وحله کی میاد به دادت برسه آلا از کجا معلوم که دری از بهش باز بشه یا دری از جهنم اینو انسان باید باشه. در اون قبل، در اون خلوت عاقبتش چیه؟ چی سوال میکنن؟ چی جواب منکر و نکیر میده؟ خب، این در تایی از وفات مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم هشت سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر بزرگشون عبدالمطلب المطلب را از میدن هشت سالگی عبد المطلب را از میدن می دیگه تعهد بزرگ کردن رسول الله را ابو طالب عموی رسول الله با میگیره تا جایی که از سردندانش هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیشتر دوست داشتن خب ما گفتیم امروز بحثمون درباره بحیرا باید باشه از همون قبل, قبل قبل گفتیم امتداد بحثمون الان میرسه به قصه بحیرا و درس هایی که در قصه بحیرا غائبه کلا در روایت های مختلف اومده بحیرا هم خونده میشه ولی صحیح ترش بحیرا راه رهیب بحثی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تجارتی الا بعضی هم میگن 12 سالش بود بعضی هم میگن 20 سالش بعضی ها میگن پونزه سالش الا سن برای ما مطرح نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه عموش میره به کوفه یا به عراق برای تجارت در اونجا با بحیرا راه ملاقات میکنن بحیرا میاد بیرون میگه شما نگاه بکنید میگه از وقتی که من این شخص دیدم در این صحرا میگه ندیدم سنگی یا درختی مگر اینکه به این شخص اج میکنه و درختان و سنگها به غیر از پیامبران سجده نمیکنند گفتن به اون مشرکینی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن گفتن نگاه بکنید وقتی که این شخص محمد صلی الله علیه و حلقه حرکت میکنن بالای سرشون ابریه سایه انداخته که آفتاب نخوره بله خداونده که میخواد این بندش رو از کوچکی تربیت بکنه میخواد حفظش بکنه میگه تاجی که رفت زیر درخت الان قدرت خدا قدرتی قدرتی خداوند خداونده سایه نبود زیر درخت لیکن خداوند سایه یه ساخت که روی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاد بحیران میترسه میگه که ولی این شخص کیه سرپرستش کیه این سرپرستش به من راهنمایی نمایه بکنید که کی سرپرستشه میان بهش میگن که ابو طالب سرپرستشه و حیرا میگه به ابو طالب که الان این فرزند و بردار بر بگردونش مکه قبل از این که رومی ها او را ببینن اهل کتاب او را ببینن چون اگر او را دیدن کو را میکوشن و یقتلون النبیین بغیر الحق و بغیر حق هم درین پیامبران خدا رو میکشتن از کتاب از کتاب‌های آسمانی از یهود و هر وقت پیانبری می او را رو میکشتن گفت که او را برگردانید همونجا نشسته بودن شش نفر اومدن دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلام میگاشن گفتن که ما الان اون ستاره قبلا اشاره کردیم ستاره محمد صلی الله علیه و بیرون اومده الان دیگه مشرکین دونستان که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا اومده یهود اهل کتاب از یهود و نصره هم دونستن که الان محمد صلی الله علیه وسلم به دنیا اومده دنبالش میگشتند در پی این شخص این شش نفر اومدن نزر بحیرا اومدن نزد بحیرا و بحیرا به آنها گفت میدونم که شما دنبال این شخصی هستید اینو بدانید که خداوند اگر کاری را بخواهد بکنه کسی جلوش نمیتونه بگیره بعد نصیحت میکنه ابو طالب بعد نشون میده میگه این شخص پیانبر خدا این علامات رو دیدید نگاه ختم نبوت هم بکنید یک چی که پشت شانه رسول الله صلی اللہ علیه، قرمز رنگ درشت موه رو نبوت در پشت سرشان بود نشان آنها میده بعد رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بر میگردن. به مکه ولی دوباره زندگیشون در اون مکه ادامه میدن. حالا چیزهایی هست قبل از به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما باید بدونیم رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی با یک از اصحاب توافت میکردن صفا و سعی میکردن ایصاف و نائله دو تا بوتی بودن ایصاف مرد نائله دختره دو تا دختر اومدن به خصف زنا در کنار کعبه خداوند در اونجا خداوند خوششون میکنه تبدیل به دو تا بودشون میکنه توبیخه برای کسانی که جوان ها خصوصا اینو بدونن که خداوند لا بالمرصاد از خداوند چیزی باقی نخواهد موند این دو شخص اومدن به خاطر این چنین فعلی خداوند برای توبیخ و درس این دوتا را به بود تبدیل میکنه از حماقت مشرکین این دو تا را یکی در طواف و یکی در مروه قرار دادن طواف میکردن و دست بهش میکشید دست به اون بوتا میکشیدن بوت کالا نبود اشخاص حقیقی تبدیل به سنگ شده بودن دست میکشیدن تبرک می‌جوشن به دو تا شخص فاحشکار دوتا شخص مجرمی که منن در کنار کعبه خداوند عمل فاحشه انجام بدن نگاه بکنید کمال حماقت انسان که بیاد تبرک بجویید به چی به سنگ این حماقت انسان رو میرسونه خدای پروردگار عالی را ول بکنه رها بکنه و به به به چند تا مرده خب این صحابی میگه که تواف می کردیم صفا مربع می رفتیم می اومدیم لمسش کردم مصح کردم ای رو بعد رسول ها گفت دست نگیر لمسش نکن مصح نکن تبرک نجود میگه گفتم بازم دوباره اینو تکرار بکنم ببینم بازم رسول علیه و سلام چی میفرمایند؟ یعنی؟ دوباره میگه دست گرفتم بعد رسول ناراحت نراحت شده علم سنه آیا نهید نکردم نگفتم که دست نگیر بعد اون صحابی میگه میگه با معلم سید رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام قط میگه هیچ وقت دست رسول الله به بوتی نخورد مطلقا دستی بوت نزده رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکی ہم نہیں ورداں غذای میارند به نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بخورن گوشت رسولان میگن که نه اون چیزی که برای غیر خدا ذبح شده من من شدم که ازش بخورم و ما ذو بحال النصر اون چی هایی که بر بطها بر مردگان زب شده برای اشخاص زب شده زب شده من اجازه ندارم از آنها بخورم من میکنن گوشت حرامی نمیخوره عمل حرامی هم انجام نمیده روزی هم در طی دور کردن کعبه خداوند رسول الله علیه و سنت سنگ های را هم میکنن ابو طالب بهش میگن ایزار اون لونگی که خودمون بهش میگیم بذار روی طولت و سنگ ها رو هم بکن که دوشت وخمی نشه رو بالا میارن همونجا سر به بالا میفتن غش میکنن همونجا بعد بلند میشن رو میپوشنن بعد میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت رو کسی ندید هیچ وقت یعنی خداوند این وقتی ش... که رسول الله صلی الله علیه و سلام ایاراشو بالا آوردن به خاطر اینکه اورتش تت بشه کسی نبینه اونجا قش میکنه که کسی اورتشو نبینه تری میفته سر به بالا اورتشو میپوشونه این از قدرت خدای که میخواد پیامبرش رو گفتیم حفظ بکنه در کوچکیش حالا قصه های دیگری هم هست در طی همین قصه بحث آیندمون مون شاء الله بحث ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه و اون مسائلی که در قصه خدیجه گفته است واخر دعوانا لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی محمد